خب، دوستان عزیز یک گفتگویی با استاد منوشهر جمالی داریم در مورد معنی دیو در فرهنگ ایران و در شاهنامه استاد جمالی روزتون بخیر سوال من از شما این هستش که چه،, چه مفهومی و چه تصویری از دیو در فرهنگ ایران بوده در شاهنامه به ترسیم شده و کلا نقش دیو چی بوده مفهومش چی بوده و اگه میشه یک مقدار درباره این مسئله توی چند جلسه با هم صحبت کنیم تا مفهوم دیو رو پیدا کنیم و در بیابیم با تشکر شما یکی از مهمترین اندیشه ها در فرهنگ ایران با همین مفهوم دیو سر و کار داره در واقع اونچه امروزه درباره دیب دیو گفته میشه این پوشاندن و نفع و ترد فرهنگ اصیل ایرانه یعنی در, با در زشتسازی مفهوم دین این مفهوم اصیل ایران مفهوم اصیل فرهنگی ایران پوشیده شده و تاریک ساخته شده. اینی که بازگشت به دیب، بازگشت به دیوان اساس بازگشت یا رنسانس ایران است. یعنی مسئله دیو رو بوستی خیلی جدی گرفت. و اصلاً در شاهنامه ما وقتی نکاتی که در باره دیب ها اگر با دقت بخوانیم میبینیم که اینها یک چیزای فدیده های زیباست که زشت ساخته شده و تعجب میکنیم که چرا این فدیده زیبا به دیب نسبت داده میشه درسته مثلا پرچ کن که کابوس پرچ کنید دیو میاد یک دسته گل به اومیده که باید و این که کابوس این دسته گل رو که می باید به فکر پرواز و آتومان ها می افتد بله بله من خیلی روی این مسئله فکر کردم که چرا دیو که اینجا با دسته گل اومده همین هر... ببین خدایان ایران گل بودن آه درسته, درسته. <تصفيق> و بو بو اساسا بو خوش اساس معرفته درسته کلمه بو در فرهنگ ایران به تمام پدیده های شناختن گفته میشه دیدن و شنیدن و گفتن و اندیشیدن اصلا در بندهش میاد چطور بوی گل یعنی چیز خوشبو که ایجاد معرفت میکنه یک دفعه در کابوس ایده یک دفعه میخونیم به آسمان و آس ربتن به آسمان چرا بد شد این آس ربتن به آسمان مسئله معراجه بله. چرا یک دفعه کابوس هم نداره بره معراج آره خیلی مهمه من خیلی روی مسئله فکر کرده مسئله اینه که یک دفعه به هوش میاییم این دیو، این زشت سخته شده، ملون شده برای خاطر که هر انسانی حوث رفتن به مراج داره یا مثلا میبینیم که دیو مازندرانی میاد با موسیقی در اتاق کیکابوس و راجب میهنش آواز میخونه که این مازندران همیشه برای بوم بود و چنان از زیبایی های مازندران صحبت میکنه که دل کابوس رو میرود که برابد مازندران و ولی خب اینجا گره میزنه این موسیقی رو شیفته میکنه اما چرا موسیقی رابطه به این بی خواهی داره چرا یه دفعه کابوس میخواد تجاوز کنه به مازندران؟ بجاه اینه که بره مازندران رو ببینه میخواد ایلا بله مازندران رو بگیره تصرف کنه آره این چرا یه دفعه ایده به اون قشنگی پیپند به این ایده بی اندازه خواهی پیدا کرده که اساس مسئله چاهنامه است درسته, درسته. واقعا چرا؟ ها. این مسئله اینه که میبینیم <تصفح> یک دفعه زیبایی های زش ساخته شده آها درسته درسته؟ می بینم زیبایی هایش سخته زیبایی هایی که ما امروزه دوست داریم. آره موسیقی رو دوست داریم ما. آره موسیقی رو رو دوست داریم. آره. میکردن آره م... رو دوست داریم. نه آره اول شاهنامه میاد که آقا به این تحمورس دیوها دانششو خط میاموza مگه ما دانش و خط دانششو خطاوند رو دوست نداریم. چرا؟ پس چرا این این کارو میکنن؟ درست. آره. آره واقعا چرا دیوایی میکنن؟ آره. پس این دیوها اینجور که میگن بعد نبودن. نه درسته. این فلسفه قضیه اینه که اندیشه اندیشه‌ساردشت در تازات با این مفهوم دیگه بوده. چرا؟ ببین همین واژه آ ما این واجه ها رو فراموش کردیم. واژه دیپ همون واژه دواس که دوی ما شده. درسته؟ واژه واجه دوه هست دو. مثلا به به باد نیکو وای میگن که این وای پراموش نکنه این وای شده باز در طلب خوصه که ما امروز به شهباز باز این ها این مرغ باز میگیم اصل معنیش یعنی باد وای وقتی هم این واژه وای هم به خدا گفته میشه هم به پرنده گفته میشه که باز باشه هم به هوای جنبان گفته میشه خب اینها یعنی چی؟ اینا چیزای از هم جدا که نبوده الا ولی این وای چرا به باد وای میگن برای خاطر اینه که باد رو هوای جنبان رو خود واژه هوا معنای اصلیش یعنی از خود ام. یعنی چیزی که از خودش می جنبه ام. هوا این چیزی که از خودش می جنبه. از خودش قائم به حرکت میکنه چرا؟ اینا این دبایی بوده این واژه اصلی وای دبایی بوده که اسم این هم خداست هم است هم باده دوبای یعنی دو تا دو تا با هم منیش دو تا با هم ببین دو تا پا با هم میتونه حرکت کنه درسته دو تا بال با هم میتونه پرواز حر... کنه درسته, درسته؟ خب اینا این دو تا با هم این میبینیم مثلا توی هم بندهر هم در اوستا وای اندر وای پا و کپش داره دروس خیلی مهمه یعنی چی یعنی از خودش میتونه راه بره از خودش معناش این بوده. از خودش میتونه به جنب <تصفيق> قائم بذار بود این قائم بذار این پیوند دو تا چیز با هم از این پیوند های دنیا ایده پیوند با دو تا چیز با هم شروع میشه بعدش دو تا میشه سه تا چهار تا پنج تا اینا مهم نیست بعدش از دو تا با هم دو تا چیز که با هم بتونن هماهنگ با هم حرکت بکنند دو... دو چیزی مختلف مهم نیست با هم بتونن به این اساس چی میشه؟ اساس آفرینن آفر... دیگه میشه, آفر... آفر... میشه مث... اینه که اساس پیدایش روشنی میشه اساس آفرینن این قضیه این ایده بزرگترین ایده پلسپی بوده که اصل همه چیزها اون چیزیه که از خودش میتونه به جنبه درست اینه که این واژه دیو به کجا بر میگرده ؟ به همین این واژه دو تا با هم کلمه اینه اینو میبینیم بینیم مثلا هم تو ابستا هم در ساچگریت دیو به معنای درخششه روشن نیز تعجب میکنیم چطور دیو درخشش میشه برای خاطر این که دو تا با هم وقتی که آب و خاک با هم پیبند کنه میروه روشن میشه اینو میگفتن روشن شد درسته وقتی زن و مرد با هم عشق بازی میکنن بچه پیدا میشه این میشد روشن شدن این ایده ها زردوش با این ایده آفرینندگی مخالف بود این رو اینی که بر این ایده برخاست اینه که این ایده منعکس شد بعدش در و تفکرات زردوشتی ها سعی کردن تمام فرهنگ ایران رو که بر پایه این گونه مفاهم تنها دیب نیست دوا خیلی واجه ها هست مثل واجه سنگ از سنگ اونم هم با هم رفتنه در معنای اصلیش در سانسکرین معنایش با هم رفتنه در واقع این یه خمیرمایی بسیار فرهنگ ایران شد آه. که همه پدیده های دیگر رو به این صورت نگاه کنند اصلا خب تعب... اینجور تحبیل میکرد همه میگفت پس همه چیزها در اثر دو چیزی که با هم همه با هم بتونن حرکت ایجاد بکنن بتونن بیافرینن این ایده شاید فرض کن از پدیده های مختلف زن و مرد آب و خاک اینا گرفته شده بود ولی یک اندیشه کلی شد درسته. و و این و این دو دو چیز که با هم ایجاد آفرینندگی میکنن لازما یکی بعد یکی خوب نیست ها نه, نه, ب... نه اجازه برده. بده این در هر چیزی برای اینا در دلسته. هر چیزی بود دلسته. به خصوص در چی در تخم ها در بذر ها مثلا فرض کن یکی از رواجه های باز دوان دانه دانه, دانه, دانه اصل چی بوده دوانه دوانه بوده دلسته. یعنی اینو هنوز در کردی دوانه به دو قلو میگن درسته. درسته یعنی که مثلا به باز اثرش باز باز راق باز کو الان صحبت کردیم باله، که باله. این دوا اومد باله. که باله. بای شده باز باز یعنی جفت آفرین باز رک یعنی مثل چی به هم پیوسته رک و معنای به هم پیوسته به با هم بافته است یعنی دو چیز به هم چی تخمانم در اصلش تعخمانه این واژه خ تبدیل به ه که ش... شد میشه تو تقومان تاو شده تقومان عربی همین تقومان ما درسته متوجه یعنی دو تا چیز په. تمام این واژه ها بله. تقوم ها با جای دیگر هم هست که همش میبینیم چیه این ایده دو چیز با هم. چون که تقوم برای ایرانی مبدع بوده درسته گفتیم که یکی از ها چی بوده یک سنگ بوده از سنگه درسته این... تو توی هندوستان سنگامو به جای میگن که دو تا رود به همدیگه برخورد میکنن همین همون هم در پارسی هم سنگام هم. و سنگار و اینا رو اگر بله. تو کدابه لغت نگاه کنیم دو چیز متصله به همان که با هم حرکت میکنن درسته بله. سنگم و پران بله. و از این گوستم این واژه مثل سنگیدن اینو سنگیدنه دیگه دو چیز رو با هم دیگه این ایده اصلی رو این با این ایده در سنگ اینه که بود که سنگ را معنای امروزی ما که ما به سنگ میدیم نیست نبوده سنگ معنای اینه که یک پیوند فوق العاده مهم بین دو چیز این را به سنگ هم گفتند نه اینه که سنگی را که ما میگیم این مفهوم ما را داشته باشه بلکه مفهوم اصلش بوده که دو چیز با هم پیوسته, پیوسته است. درسته. که اینا اصل حرکت اینه که ایده اینه که این مونده میگن از سنگ هم آب پیدا میشه هم از آتش حتی مولوی خیلی قشنگ میگه هم آب آتش میگه زن و شوین در سنگ زن و هستن ایده اینه که حالا این ایده به کلی بارزده ایده خالقیت برای خاطر اینه که این در همه چیز هست در هر تخمی هست پس ما خالق خالصم نداریم دیگه <محن> <تصفيق> خدا در همه چیز هست امروز چی خب، البته اینا را این حرف را به پانتئیسم و به ارفان و اینا نسبت میدن با اصطلاحات اسلامی نمه حلول و فلان و اینا رد میکنن ولی این ایده بوده که آقا این اصل از خود ش... به خود شکل دادن، از خود تحبل پیدا کردن این در همه چیزها در همه چیزهای اساسی هست شاید همین ایده هست که اومده در امروز ما به ماتریالیسم و اینا میگیم و ند میکنیم برای خاطر اینی که متوجه نیستیم که این ایده یا میبینیم نتیجه این ایده همون سکولاریسمه خب این ایده رو اینایی که خدای خالق میخواستن داشته باشن رد کردن رد کردن یعنی بخاطر همین مفهوم دیو هم خب مفهومدی هم این مثل همین سنگ مثل مر کلمه مر هم همین معنا رو دستم این, این واژه ها رو تمام ملعون و مترود و منفور قرار گرفته هست درسته. اینه که شاهنامه که خواه ناخواه در دوره ساسانی ها و تیولوجی زردوشتی دستگاری شده این همه این اندیشه ها چی شده جاسازی شده و باستاب شده درسته. اینه که ما این مفهوم رو ام، امروز میخوایم فقط در مورد جمشید برای که کلمه دیو میاد در شاهنامه یه خورده بحث کنیم روش بله درست آره. ببین مثلا خیلی از این جالبه برای این که اولین چیزی رو که جمشید میکنه البته مثلا در وندیداد و اینا اولین کاری که میکنه خشتازیه خش سازی یعنی جهان رو میسازی یعنی مدنیت رو میسید ولی اینجا در شاهنامه میبینیم که نوشته نخست،, نخست آلت جنگ را دست برد در نامجدن به گردان سپرد به فرر کهی نرم کرد آهنم چو خود و ذره کرد و چون جوشنم چون خفتانو چون در برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان خوب اولین کاری که میکنه اینه که از آهن اصلحه میسازه این به کلی ضد ایده جمشیده جمشید ییما یعنی دو قلوی با هم پیوسته همون خب معنای دیو داره متوجه هستی؟ حالا چرا اینجا؟ یه میاد. اول یعنی بیاد اشت خود بکنه یعنی با آفریننده اشت باشه این آفریننده اشت اسمش آسان بوده که سنگ باشه خب این آسن رو چون که آهنم از سنگ ایجاد میشد از سنگ پیدا میشد اینکه که درست همون اسم رو آهن گذاشت. حالا این چیز برای خاطر اینی که جمشید آسان خرد داشته یعنی خرد پیوندهنده داشته خردی که همه چیزها رو با هم سنتز میکنه می آفرینه به جای این،, این با این آسان چیکار کنن آخر آسان خرد, خرد بهمنیه با این خرد دنیا رو میتونه سامان بده بیاراید هلان. خب این این اومدن برای خاطر که ایده جمشید و بین مردم خیلی محبوب و مشهور بوده اومدن گفتن آقا این آهن رو برای خود و ذره و آلات جنگی در صورتی که ما در ویس و رامین اینها میبینیم که آهن برای پیون دادن مثل روی یعنی زن و مرد متوجه بله بله. که معنای آهن به کلی عوض میشه, عوض میشه. مثلا در چیزهای زردشتی میبینیم شهریور که به حساب حکومت دلخواست ایدئال حکومت دلخواست میبینیم به آهن ارتباط پیدا میکنه معنای اولیش این بوده که حکومت با مهر همه را به هم پیبند میده ولی اینا آهن را میکنن آهن دلست. چی میشه؟ یعنی با شمشیر میشه تو کله مردم داد. <تصفيق> ادم هر یه دفعه میاسن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> به جنگ به جنگ میرسن ببینید این چیزا چطور مثلا همین خود وای را خود وای که دوای باشه این اول مثلا برندهش میبینه این چیزی که انگرامینو و سپنتامانی رو یعنی تمام عداد و خود رو به هم پیبند میده ولی یه دفعه اینو خدا جنگش میکنم لباس جنگ می و بعدش همیشه با, با, با تو صف زردوش یا بر ضد دشمن می جنگ اصلا اینجور نبوده. در که دشمنو رو دوست رو با هم پیون میزده میدونید اینده رو به کلی دستکاری میکن آره اینه که ایده دیو خوب نگاه کن این سنگ درک اندیشه متناظره و متوازی و عین واژه دیوه درسته حالا این پردوسی این جمشید اولین کارش چی میشه ساختن اختراع اختراع جنگ از آهن میشه درست. به جای اینی که واژه ما که معنیش یعنی جوغول یعنی دیب یعنی دو تای با هم پیوسته ما یعنی دو تای با هم پیوسته این اساسان منوش دیوه انسان وجود است که دو چیز با هم درش پیوسته است، یکی که اثر اوfarinند. تن و جان. یکی آرمتیه، زن خدای زمین، یکی سیمرغ زن خدا. دو چیزه، دو تا با هم پیوسته اصر رو خوب نگاه کن. برای این خاطر یمانا میده میشه. جمشید. حالا این میاد اینجا اول شاهنامه چی میشه؟ بعدش شروع میکنه این ایده ها همه دستگاری شده تحبول پیدا کرده ولی در این دستگاری ها اصل باقی مونده ما اگر نکته ها رو بفهمیم میبینیم که قضیه چی شده حالا می‌بینیم که این میاد با خرد و خواستش هیچ چیزها را پیدا میکنه داروها را پیدا میکنه بوی خوش رو پیدا میکنه که فراموش نکنید بویی که که کامو رو <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> گمراه میکنه با آسمونها همینجا جنبشید میگم اصلش یه چیز به دیگر بوی های آورد بود که دارند مردم به بویش نیاد چوبان و چوباپور و چون مشک ناب چو عود و چو انبر چو روغن گلاب به <تصفيق> با این خردش دنبال چی میره ببین دنبال بوهای خوش میره این مدنیت رو میآفرینه انسان بوی خوش رو دوست داره ولی با جنی که بو رابطه با شناخت او اینا داره ولی این در آوردن بو از اینها یا اینی که بعدش ببینه از چی پزشکی و درمان هر دردمان در تندرستی و راه گزند اینها را همه را از شناخت گیاهان جستجو میکنه اینا را پیدا میکنه با چی؟ با خردش و با خواستش حالا خواست چیه؟ هیچ وقت فکر کردی خواست چیه؟ بگو هرچی میگویی فکر میکنی چیه در مقابل باجه خاص چی میگذاری؟ اراده نظر ها خیلی. ولی این اراده نیست چرا؟ برای خاطر که ما فاصله گرفتیم از این فرهنگ خودمون واژه خاص از خواز میاد خوا همون تخمه خوده این چی شد واژه خوا تخمه شده شده خایه کی واژه معنای تخم داره تنها به خواهی آدم نمیگن بلکه معنای جا خیلی جاها به بل. توق میگن خواهی اینی که آز چیه؟ این خیلی مهمه آتش ببین این فرهنگ ایران جان را آتش میگیره جمشید که نخستین انسان هست در فرهنگ ایران بوده در دور زن خدایی جانش آتش جانه مهم. میدونیم ما امروز بحث جان میکنیم این آتشو چندان اهمیت نمیگیریم این آتش چیکار میکنه آتش شعله میکشه میاره بارا اینو بهش شمی زبانه میکشه درست اینو میگفتن یازیدن آتش میازد شعله میکش، میکشه زبانه یا این کلمه آز همین یاز بوده مهم. یا... کلمه یاس هم همین بوده ببین یاسه به اشتیاق و عرض و ها یاسه میگن این, این شعله کشیدن زبان کشیدن آتش رو یازیدن میگفتن جان انسان چیه؟ آتش آتش چی میشه؟ میاد. یاد آزیدن بعدش با خشم که آمیخته شد این کلمه با تمه او اینها پیدا میکنه پوزون خواهی که به کلی معنای اصلی رو میپوشونه شده معنای اصلیش معنای مثبت بوده حالا چه واجه هایی از این یاز آز درست شده؟ یکی آزادی باریکلا <تصفح> <تصفح> آقا کلمه آزادی درست از واژه آ آز ایجاد شده یازیدن این آتش جان که میاز این آزادی است واجه دیگه چیه؟ سرپرازی است سر آتش سر برمی اپرازد اپرازدن برمیگرده به همین واژه یا یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان که آتش جان هست یا زیدنه آزادیش خب اینا اسباب درد سر بود برای عدیان نوری درسته میخواد متعالی؟ میخواد بره بالا این آتش شعره میکشه به طرف بالا این یکی آزادی یکی سرفرازی نمیخواد خم بشه کدوم آتشی دیدید خم بشه آتش که خم بشه باز از سر راست میره بالا, راست میره بالا درست. خب درست ابلیس که در قرآن ابلس شده در تبریبش میگن به آتش به سائقه به برق و آزربش میگن الویس. یا سنجیل میگن سنگ ایل یعنی خداشی سنگ سنجیل آتش برق آسمان رو بهش گفتن آتش حتی مثلا ابو ریحان بیرونی آتش رو به برق میکرد آتش بود حالا این همین آتش کس که میاد در جان هر کسی این بحث دیگر اینا فکر میکردن همین آتش ابر هم باران میباره هم آتش. چیز هم آتش این, این جمره میشه اخگری میشه آتش جان هر کسی میشه این تفرد این ایده ای آتش جان رو اینجور به طبیعت و اینها هانست بزمیدن حالا. حالا این آتش جان در کجا پیدا میشه در خواستن آزادی خواستن خواست خب ما در این داستان جمشید پیب مسئله خاص رو میبینیم خرد و خواست خود متوجه شدی؟ بله بله میگه من خواستم من این رو خواستم هنر در جهان از من آمد پدید جهان رو به خوبی من آراستم چنان گشت گیتی که من خواستم این اولین سخن یک نخستین انسان ایرانی جهان رو به خوبی من آراستم آراستم معنای ناظم دادن در زیباش جهان آر... به سیاست ایرانی جهان آرایی میووت در هر جایی که شما می آراید جهان را آراستید شما اگر در قوم یا آذربایجان یا تبریز یا در خراسان اونجا رو آباد بکنید جهان را آراستید یعنی زیبا کردن یک قسمت از جهان زیبا کردن همه جهان هست. همه هر کسی جای خودش رو باید بیاراید همه با هم جهان رو می آرایم. خرط چیکار میکنه خواز خواست چیه؟ همین خواستن همین یازیدن آتش جانه این نیازیدن آتش جان شروع میشه از همون آهن. آسان خردی که اینجا شده جنگ آلات جنگ سادی از اونجا شروع میشه و پارچه میبافه فلان همه مدنیت رو جمشید یعنی انسان بدید میاموره مدنیت رو میاموره از یه طرف در عمق چیزها فرو میره که از در اون چیزها از یک طرف به پهنا میره چرا میگه که گذار کرد. از آن پس به کشتی دارا ز کشور به کشور برای اومد شده. دویار رو می پیماید. یعنی چی؟ یعنی بیر وسعت پهنای دنیا رو می جوید. این چیه؟ از خواستش. حالا خاص خواست آخر آتش چیه؟ یا, یا زیدن. تقالیست. یعنی چی به معراج میخواد اینجا دردسر درد سر شروع میشه یعنی هیچ کدام از این ادیان این معراج رو مناسب رو خودشون می دونن درسته <تضحق> معراج جو <تضحق> <تضحق> شما و من و دیگری داشته باشیم که معراج باید حق ویژه زرتشت و محمد و امثال اینها باشه عیسی و موسی و فلان اینا ما ها حق نداریم معراج بریم خیر خوب خب اینجا اما یک دفعه مینیم جمشید، اسم دیپ صرف میشه. درست، در اوج خرد، در اوج خاص و خرد، خواز که اینجا، اوج خ... خوازه، یازیدنه درسته، اوج چی پیدا می‌شه اضافه دیپ آخر جانم، تا حالا همه کارهای خوب کرده، همه مدنیات آفریده با خردش همین شده، حالا حالا چرا دیپ پیدا شد؟ <تصفيق> این, این هم دیو هم کی پیدا میشه درست عید نوروز پیدا میشه درسته. و حالا ببین اینجا به فر کیانی یکی تخت ساخت چمایه بدون گوهرم در نشاخت یعنی نشان که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برپراشتی چون خورشید تابان میان هوا نشسته او شاخ فرمون را ها حالا این در این روز که به این آجاز جهان انجمن شد برای تخت او فرو مانده از فر بخت او فره را ما در یک گفتگوی دیگر بحث کردیم که فر جمشیدی چی بوده حالا سر ماه نو هرموز فروردین بر بوده از رنج تن از رنج تن دل زکین خوب نگاه کنین این هرموز فروردین یعنی روز اول فروردین که ایرانی ها هرموز نمیگفتن احورامزا روز اول روز اول روز خوررم بود خوررم جدا فارس میگفتن خوررم جدا پس بنابراین روز اول چی میشه روزی میشه که جمشید با دیب با آسمون میره <تصفيق> حالا این دیو درست خرد رو یعنی دیو که زشته و گمراه کننده است این همکار خرد جمشیدی میشه خرد جمشیدی در این کارهایی که کرده این مدنیت سازی گمراه کننده اوج خرد چی به کجا میرسه به دیو میرسه به گمراهی میرسه بنابراین خرط خرد چی میشه خرد در اوج تعالی اندیشیدن گمراه کننده دیوی میشه حالا ما <تصفيق> <تصفيق> حالا ما باید یه چیزی در نظر بگیریم در اینجا به این نکتهم گفتنش ضروری است که اینها این فرهنگ این ایران عقیده داشت که این آتش جان اسم دیگرش اخو بود که امروز شده خوی و این خوی رو امروز اغلب غلط به کار میبرن به معنای عادت و اینا در صورتی که معنای سرشت متعالی انسانی رو داشته سرشت آفریننده به این اخو چهار تا نیرو داشته یعنی با خودش پنجتا میشوده که این نیروهای مینویی میگن اما یعنی نیروهای زمیر که این چهار تا نیرو اینها بالهای این جان بودن و این بالها این بود که به صورت یک مرغ با چهار بال انسان مرغی با چهار بال پنداشته می شد و با این چهار بول بود که همیشه می توانست چیکار کنه؟ پرواز کنه بر دیدن سیمرغ برای بر دیدن خدا یعنی همیشه امکان اتصال و همپرسی با چی داشت؟ با سیمر، با خدا داشت بنابراین هر کسی امکان این رو داشت که این مت... بلاواسطه و با مستقیم با خدا رابطه بدا کنه حالا این... این مسئله بود که خب باز این زردوشتگری و عدیان دیگه نمیپذیربتن ماسای واسطه میتراشتن آه خیلی خوب همین، وقتی این چی میشه؟ این خاطره حالا این مسئله درست در روز نوروز که این بزرگترین جشن طبیعت بزرگترین جشن است که دنیا زنده میشه در این روز فرخنده جمشید میشه گناهکار چون که با دیو میخواد آسمون بره میخواد با خدا رابطه پیدا خب اینو نباید مانع شد باید نغزشان چه کاری بکنه برای که اگه هر انسان این کاره بکنه دیگه احتش به واسطه نداره که اره دیگه دکونه همه این ادیان بسته میشه آره. پس باید چی کار کرد باید گفت آقا چمشید گناهکاره نه بالاتر از این گفت منیدن بده آره. اندیشیدن آه. خرد منیدن یعنی اندیشیدن منیدن آه. بده درست. تو این تمام این کارا رو کردی چون که به کجا رسیدی؟ به منیدن رسیدی نه, نه، رسیدی بینید که این منیدن ها سبب گمراهیت, گمراهیت شد. شد پس آقا باید دست از این منیدان کشید این فرهنگ و این مدنیت رو باید احور آمزا بسازه باید الله محمد بسازه باید یهوه بسازه تو نه خردت گمراهت میکنه. میکنه اینی که شد منیدان میشه آقا کارزشت. <تصفح> یعنی اندیشیدن میشه منی کردن درسته. بنابراین دیو درست اون اوج چیز خرد انسان در در ارتباط به حقیقت اینه که در با خرد و خواستش میتونه مستقیما به حقیقت برسه درسته. این رو برای این نقطه آخر دیپ میاد یعنی گمراهش میکنه پس بنابراین می میبینیم که این و منیدان رو که اساس این پیدا کردن این تمام چیزها مدنیات و اینا بوده اینها رو میگه این با این منیدان تو حق نداری مدنیت بسازی چون که آخرش میشی دیپ چون که میخوای با خدا اتصال پیدا کنی تو با آباد کردن این در بندش میاد این کار احورام از داست. این کار الله تو حق نداری فجولی کنی خب همین مسئله رو ما امروز داریم اینه که یه بحث از دیو رو ما تونستیم تا ای روشن کنیم بله یه چند تا هم اینجا به پیش امرد آقای جمالی برای من اونم این هستش که اصولا چرا اه جمشید موقعی که این همه کار نیک در جهان میکنه تاجه میکنید و این همه مدنیت رو به وجود میاره با خرد و خواست خودش چرا در پایان چرا متهم به منیدن میشه؟ خب این رو که گفتم که درسته و چرا منظورم اینه ای که چرا خود فردوسی بزرگ به این مسئله توجه نکرده این فردوسی متونی رو که بر دست رس داشت من فکر میکنم متون مختلفی بوده ولی طور اینها را برمیگزیده، یک احساس خیلی ظریفی داشته که کدام متون حاوی مطالبی هست که اساسی است. اونها را به شعر در میارده من فکر می کنم همه متونی رو که در دسترسش بوده ترجمه چیز میکرده شعر میکرده بعدش در این در این متن متوجه شده که جمشید نقش فوق العاده مهمی در مدنیت داره و در ساختن مدنیت و در اینی که البته این داستان از طرف مو به دان زر در این دوره چیرگی ساسانیا دستکاری شده بود بله و اون متونی دیگری در دستش نداشت میدونیم ما این متونی رو که در دستش داشت داشت اما این متنی رو که او انتخاب کرده در این متن که البته این معنوشینه متونی بوده که ها هم در اون نقشی داشتن در اینجا می بینید که مثلا این با خردش چه کارها میکنه اینجا اینجا چهره مثبت خرد را نشون میده متوجه و از مسئله ولی مسئله نوروز رو هم با جمشید پیوند میده و رو... ولی روی مفهوم این باقی نمیمونه که این نوروز به این ترتیب جشن دیگه نیست دلسته. بلکه سوگواریه و این در آثار زردوشتی در بندهشون و میشه دید که جمشید روزی هست که احورا مزدا به دنیا حمله میکنه چیز احریمن به دنیا حمله میکنه یعنی روزیه که احریمن با همه چیز میامیزه برای این خاطرم این در اینجا این روز رو انطباق داده با پرواز جمشید با دیو در این روز که چی که اهریمن در تئولوژی زرتشتی وارد دنیا میشه و با همه چیزها میاموزه و در این روزم چیکار کرده با جمشید آمیخته اینه که با اینه که جمشید رو چی کرده وقتی که آمیخته عجمشید بودن از حالت اولش خارج کرده این در مورد واژه منیدن بسیار نکته جالبی رو گفتید که منیدن همون اندیشیدنه در واقع منیدن همون اندیشیدنه منیدن یک این واژه ها اهمیت این واژه ها اینه ام. که چهره های مختلفه تدیده اندیشیدن شیدن رو نشان میدنه اند، اندی شیدن اون کلمه باجه اولیش یکی انده یک که اند و هند این در اصدش هندی سیدنه. ولی اند و هند اند یعنی تقن در معنای اساسی در سانسکریت هندم میبینیم در کردی مثلا باقی مونده معناش زهدانه مثلا میگیم هندوانه یعنی زهدانی که پره سرشاره از ترشورا از تخمه یعنی هندوانه معنیش اینه که نیست که از هند یعنی منظور آره یعنی مثل مثلا خواجه خیار که اونم یه چیزیه که معناش اینه که یعنی خیار بوده یعنی پره متوجه پر از تخمه پر از سرچشمه است اینی که این ایده ای دیشیدن دیسیدن بوده یعنی شکل دادن یا شکل یابدن تخم در زهتان چی پیدا میکنه شکل مییابد درسته هند ان در هند شکل مییابد این رو یک رویه اندیش... یک رویه به حساب از اندیشیدن رو نشون میده رو... رویه دیگر رو منیدن نشون میده اینا منیدن من و من یعنی شیرابه و شیره چیزها شیرابه گیاهان رو من و مان میگن درسته. این شیرابه این جد اسمهای مختلفی این انک یعنی شیرابه جان آخر جان هم آتش گرفته می شد هم آب گرفته می شد و این, آ... این شیرابه چی پیدا میکنه، پی... پ... پدیدار میشه. یعنی شیرابه وجود انسان شکل به خودش میده. ده این نیست که ببینید کلمه منیدن که معناش با وجود و یعنی با جوهره انسان کار داشت این جوهر انسانه که در منیگیدن پدیدار میشه در اندیشیدن هم گفته شده ولی این شیرابه یک چهره دیگر این همین اندیشیدن رو نشون میده داشتن این دوتا اصطلاح خیلی مهمه و همین کلمه یاد نره این کلمه خیلی هست که رابطه خرد رو با ماه نشون که یعنی رابطه خرد با بینش در تاریکی اصل فرهنگ ایران بینش در تاریکی یعنی بینش بر پایه جتجو و آزموش و این به کلی با فلسفه افلاتونی و سایر روشن فکر زر و زردوشت اینا فرقشه این بحث دیگرش که ما میکنیم ولی آقای جمالی من یه دوستی همسن سال خودم در ایران داشتم این خیلی پا فشاری می‌کرد که آقا منیدن یعنی خودخواهی کردن فلان. چرا چرا اینا منیدن و خودخواهی کردن میدونن خب... علت علت این این کار چیه چرا چرا منیدن رو ب... ب... خیلی خوب برای خاطر اینه که اون قدرت آفرینندگی رو فقط به خدا نسبت میدن قدرت ابتکار رو قدرت سرآغاز شدن رو درست. قدرت ایجاد مدنیت رو قدرت ایجاد این تمام اینها قدرت اینه که چیره بوجودت قانون گذاره شیره بوجودت جهان آراست افرد. یعنی ساماندن، اینها رو همه را هم اسلام هم زردشتیگری اینها هم مسیحیت هم یهودیت قبول ندارن درست. اینه که آمدن درست به باج منیگدان. معنای زدش رو دادن بله بله اینه اما در مثلا در زبان کردی معنی کردن یعنی پجویدن خژویدن یکی این مسئله بود من مسئله دومم که خیلی مهمه اینه که الان شما با این توضیحاتی که در از شاهنامه تفسیر کردیم و به ما گفتید این دیو یه معنای مثبت پیدا کرد ناگهان یعنی آه. معنای دیو رو که اینا زشت ساختن و گمراه کننده ساختن میبینیم که معنای مثبتیه در واقع ما یکی از وظایفمون باید این باشه که به اون فرهنگ دیوی برگردیم درسته میگن اصلا رنسانس و با بازگشت همین نارسته. در اروپا هم میگن بازگشت به کفر برای یعنی <وزن> باز یعنی بازگشت دیوان درسته دیوها اثر بر میگردان یعنی چی یعنی اثر انسان دیو میشه چون که یما یعنی یفت یعنی یعنی اصل خدافرین بلی. اصل خدافرین میشه دیو اینه که بازگشت به دیوان بازگشت نیست یعنی پیدا کردن خود اثر و انمان از سرچشمه آفرینندگی و ابتکار و اینها مدنیت رو دیگه خدا مدان نمیسازه دیگه بلکه خدا در ما هست خدا آتشیست منقلیست از آتش و این آتشی رو در جان ماها گذاشته ماها با هم دیگه در اجتماع منقل این آتش هستیم <laughs> این یعنی قانون آتش از واجهه زیبا فراموش کن منقل مان من... مانگ آل شده منقل درست منق... یعنی ما آل یعنی سیمور درست یعنی در در ماخ چی است همه تخم هست همه تخمای انسانی یعنی چی یعنی همه بشریت با هم دیگه یک منقاله آتشون یک این منقال این واژه <تصفيق> ها مونده, مونده. میدونید ما ها چون که ما ها چون که رابطمون رو میدونید با این فرهنگ از دست دادیم این واجه هایی که پیش پا افتاده هست ما اصلا آره اینا رو خیال خب منقالو بیار خب بیشتر فکر می‌کنیم منقل وافور و اینا در فکری نیستیم که ما سر کار داره <تصفيق> با با خوچه کل بشریت سر و کار داره و در این آتش ها با هم دیگه این کل بشریت رو درست میکنه میدونه اینا را اصلا ما با ناوری، ناباوری, قبول، ناباوری مسئله دروشان فکرای ما اینه که نمیتونن باور کنن که این جلوترها اینجور فکر کردن چون خودشون به این فکرها با زور میرسن باید برونن به زور کان تو هگل بخونن وقتی تازه نصف این چیزها رو نمیفهمن و یه دفعه اینا رو که میبینن تعجب میکنن که این اشخاصی که اون موقع اینقدر شرایط تولیدی، ابزاری و اقتصادی و اینا نداشتن این افکار رو کردن چه غیر ممکنه آقا اون موقع بین و کلین داشتن، سنگ داشتن، غیر ممکنه هنچه افکاری داشته باشن میدونیم مسئله اینه مسئله اینه که ما خیال میکنیم نیاکان ما که البته در همه دنیا این افکار پیدایش پیدا کرده فقط جا به جا مسئله تکامل و تحولش فرق داره در ایران تکامل بیشتر داشته در جاهای کمتر تکامل داشته بیشت. اما ایده های این انسانی همه جا پیدا شده ولی مسئله اینه که ما امروزه زبان ما حاوی این فرهنگه این فقط ما چون که این معانی که بعدش به این واجه ها داده شده در ذهن ما جا افتاده چون این معانی در ذهن ما جا افتاده شده که مانع میشه ما معنای اصلی رو اصلا باور کنیم تو کتابای لغت مثلا همین لغت نامه را معانی اصلی واجه همیشه در آخرش به زور پیدا میکنی یه جایی ریز نوشته شده. چون که معانی دست دوم، و دست سیم و دست چهارم که وسیل قدرت ها در اجتماع نیرو گرفتن و جا افتادن معنای اصلی رو پرت کردن اصلا نقدر اون تای تا که من یادم هست یکی از دوستانم می گفت من آمده بودم یک مدرسه درست کرده بودم در مدرسه خاصی ویجهی برای تعلیم کودکان و اینا اون وقتی یکی از رو دعوت کرده بودن در دوره شاه خواهر شاه که بیاد برای افتتاح این مدرسه اون وقتی که می اومدن، این چیزها این نوکرها و چیزا میگفت در هر جایی می رفتیم کلاسی که توضیح داده بشه که این در این کلاس چی میشه اینا گفت این نوکرها طور دور اینو میگرفتن وقتی این آدم کوتاقد و کوچکی بود گفت من رو همیشه آخر صف بودم وقتی من به ظهور آد... وقتی که میگفتن خب باید توضیح بده وقتی من از پشت صف میکشیدن بیرون که من توضیح بدم حالا قضیه اینه که تم دنیا اینجوره میدونید اشخاص ایچی افکار مبتکر ایده های ابتکاری رو همیشه اون هاشیه ها مندازن به زور باید کشید باید بیرون <تصفيق> این مسئله این همه جا هست یاده داره بزرگترین متفکران تو ایران همیشه اون پشت پسکوله پس پس پس ها باید پیدا کرد چونکه اون جلو پر از این حوچی ها هستن دیگه <تصفيق> همه, همه جای اجتماع این حوچی ها صف اول رو <تصفيق> همیشه گرفتم آقای جمالی یک موضوعی بود من یه دوستی داشتم در ایران که همسایه بودیم بعد این, این دوست من خیلی مسر بود که بگه آقا خوب کاری کردن این جمشید خودخواهی کرد خوب کاری کردن این جمشیدو گرفتن به دو, دو نیمش کردن اصلا کسی که مغرور بشه خودخواه بشه یعنی شاهنامره اینقدر سطحی این دوست من که همسایم هم بود تفصیل می در ایران و الان که شما این مسئله رو گفتین من می که اون چقدر بچگانه و چقدر از روی نادانی شاهنام را می میکرده و عجیب اینه که هر وقت زنگ میزنم این داستان را دوباره پشت تلفن هم به من میگه یعنی هنوز هم همون داستان های خب میدونید مسئله اینه که قدرت یعنی به دفعه میاد مثلاً, آره مثلا شاه هم میاد مثلا با جمشید مقایسه میکنه یا شاه هم نگاه کن خود خواهی کرد یعنی اینقدر سطحی آره اینا متوجه این اصلا معنای کلمه منگدن نیستن که چرا اگر هر کسی پلوی خودش کمی فکر بکنه که چرا واجه اندیشیدن یک دفعه شد خودخواهی میدونی؟ درسته یکه تاقل تفکر برای چیه؟ برای اینه که آدم مسائل رو درب بکنه این تضاد از کجا اومده؟ این تضاد اینه که آقا یه دفعه منیدن اندیشیدن چرا شده خودشایی خود را شریک خدا دانستان یا خدا دانستان خب, خب, خب این, این خود معنیش خود ای؟ معنیش چیه معنیش اینه که این از خود اندیشیدن نفرین شده درسته شده چی کسی که از خودش می اندیشه خودش رو این همانی با خدا میده که این کسی حق نداره میدونه اینا رو چنون در ذهنها جای نقطان و اینا نمیدونن ولی خودشون نمیشونن فکر کنن که آ من روزی 500 دفعه من میگم <تصفيق> پس من لارا من خودخواهم من بر خدا هستم این اصلا اینا میدونن این تذکرات ها رو در زندگیشون هیچ وقت کنار هم نگذاشن میدونه اندیشیدن اینه کدام درباره پیش پا افتاده ها فکر کنه خیلی این مسائل پیش پا افتاده آقا چرا من اندیشیدن شده یه خود خدا خدا خاصن خدا, خدا شد می رو این... چرا من اینقدر من میگم یه من یعنی اندیشنده یعنی کسی که از خودش میاندیشه کسی که شیره وجود خودش رو بیاره خب من حقیقت رو میتونم می بیان کنم حق دارم البته سر فراز باشم این حق من به سر فرازیه درسته, درسته؟ این که چیز من این حق از خودم بگیرم من نباید من بگم اصلا تو سر من بزنم اصل... یعنی اندیشنده فراموش نکن من یعنی اندیشنده. اندیشنده یعنی من همیشه تو سر اندیشندگی خودم بزنم معنیش اینه این حرف معنیش اینه که من همیشه باید چون که من میگم باید دائما تو کله خودم بزنم چون که اندیشنده رو در خودم باید نبود کنم نابود کن. خب باره. خیلی ممنون ما خیلی چیزهای تازه آموختیم درباره معنی دیو و معانی مثبتی که این واژه و چقدر مهم هستی معنی و امیدوارم که در بحث بعد این معنی رو گسترده کنیم و در جاهای دیگه شاهنامه با گستره معنی این آشنا بشین بسیار خوب بسیار سپاسگزارم از وقت شما با تشکر از شما